بلین غربی و شرقی، آلمان غربی و شرقی. 22 دسامبر 1963. کیف کوچکی در دست داشتم. وقتی آماده میکردم کردم، زربان قلبم تند می زد. کیف را از اسباب بازی های کوچک برای گریتا پر کرده بودم. امروز برای اولین بار می دیدمش. دولت آلمان غربی موفق شده بود حکومت آلمان شرقی را متقاعد کند تا به آن دسته از ساکنان غرب که خانواده و نزدیکانشان در شهر زندگی می کنند اجازه داده شود دست کم برای روزهای عید یا جشن تولد دیدن خانواده هایشان بروند. بیش از دو سال گذشته بود و من هنوز خواهرم را ندیده بودم. نه را دیده بودم و نه دختر کوچکش را که در همین شهر و در همین نزدیکی به دنیا آمده بود. یک دیوار بزرگ مرا از لذت دیدار آنها محروم میکرد طی این مدت هیلدا توانست دو بار برای من نامه بفرستد یا شاید هم سه بار نامههای کوتاه و در چند خط و مختصر به من خبر بدهد که حالش خوب است و اینکه گریتا روز به روز زیباتر میشود اما در مقابل من تقریبا هر هفته برایش نامه مینوشتم هرچند میدانستم نامههایم اغلب به دست او نمیرسد زیرا دولت برلین شرقی از هر گونه ارتباط ساکنان شرق با ساکنان غرب ممانعت میکرد و اجازه برقراری هیچگونه ارتباط بین طرفین را نمیداد از منطقه بازرسی رد شدم کمی میلرزیدم شمرده شمرده قدم برمی‌داشتم و به طرف بخش شرقی میرفتم کمی دورتر دو سرباز مسلح ایستاده و منتظر ورود من بودند سلاحی که در دست داشتند چهرهشان را خشنتر نشان میداد به سمتشان رفتم برگه ها و مجوزهای های وروددم را اسکیفم درآوردم و یک بار دیگر با دقت آنها را چک کردم به دو سرباز که رسیدم برگه ها را تحویل دادم آنها را بررسی کرده و سپس به من اشاره کردند وارد اتاقی در بسته شوم وارد شدم دو مرد و یک زن در اتاق بودند زن شروع به بازرسی من کرد و همزمان آن دو مرد کیفم را باز کردند و هرچه در آن بود روی میز کوچک وسط اتاق ریختند اینها اسب بازی هستند برای دختر خواهرم میبرمشون از وقتی به دنیا اومده ندیدمش هیچ کدام جوابی ندادن. حرفی نمی زدند توصیه های دوستان همکارم را به خاطر داشتم و کاملا آماده بودم میدانستم موقع عبور از منطقه بازرسی چه در انتظارم است آرام به یک بسته سیگار مارلبورو که داخل کیفم بود اشاره کردم. به آرامی و کاملا وی آن را برداشتند. سپس به من اشاره کردند وسایلم را از روی میز بردارم و بروم. همه چیز را برداشتم و داخل کیفم گذاشتم و خارج شدم. تقریبا نیم ساعت راه رفتم تا آدرسی را که هیلدا به من داده بود پیدا کنم. بالاخره رسیدم. ساختمان بزرگی مقابل من قد برافروشته بود. رنگ های اصلیاش مات شده بود رنگ و رو رفته به نظر می رسید و به شهر رنگ و بوی غم میداد در ورودی ساختمان کسی را ندیدم وارد شدم به طرف پله ها رفتم راه پله در مقایسه با بزرگی ساختمان بسیار تنگ بود از پله ها بالا رفتم تا به طبقه دوم رسیدم به آپارتمان هیلدا که رسیدم ایستادم و زنگ زدم هیچ صدایی از داخل نمیآمد جواب نمی دادن. دوباره و چندباره زنگ زدم کسی خانه نبود دیگر نامید شدم چاره نداشتم جز اینکه منتظرشان بمانم تا به خانه برگردند. به در تکیه دادم و نشستم در به ورودی آپارتمان انگار داشت میافتاد بعضی قسمت هایش داشت می شکست چند ساعت به همینونفال گذشت گاهی چرت می زدم و حتی میخوابیدم و همچنان منتظر بودم سکوت مطلق بر ساختمان حاکم بود به امارتی متروکه می مانست. درها همه بسته بود. و کوچکتنین حرکتی دیده نمیشد. نه کسی به آپارتمان ها وارد و نه کسی خارج می شد. بعد از مدتی بلاخره از پله ها صدای پایش شنیدم یک مرد و یک زن را دیدم که به طرف من می تقریباً تقریبا روبروی من و به فاصله دو در از آپارتمان هیلدا ایستادند محتاطانه نگاهی به من انداختن فورا از جو بلند شدم به طرفشان رفتم و پرسیدم من خواهر هیلدا هستم همس شما اون و شوهرش سپرو میشناسید اسم دخترشون گریتاست با عجله در رو باز کردن و وارد آپارتمان شدن صدای نامفهوم مرد را شنیدم که با ترس زمزمه کرد ما نمیدونیم درباره کی حرف میزنید و در را پشت سرش بست و قفل کرد نمی توانستم بیشتر از این منتظر بمانم چون مدت زمان مجوزم در حال اطمینان بود مجبور بودم برگردم ذهنم درگیر حرفهایی شد که این اواخر شنیده بودم درباره ناپدید شدن ناگهانی افراد که ممکن بود در شرق اتفاق بیفتد امکان نداشت هیلدا بدون اینکه به من خبر بدهد آدرسش را تغییر داده باشد با وجود سختی زیادی که برای ارتباط با هم داشتیم او حتما راهی برای خبر دادن به من پیدا میکرد. ضمن اینکه اعلام شده بود در کریسمس به خانواده ها اجازه دیدار داده می شود. و او در آخرین نامه کرده بود در همان زمانی که برای رفتن من تعیین کرده بودیم منتظرم خواهد بود با هر قدمی که در راه برگشت به خانه برمی داشتم نگرانی بیشتر می شد قلبم پر از شک و تردید بود و در مورد اینکه چه اتفاقی ممکن است برای آنها افتاده باشد به شدت نگران بودم مسیرم را عوض کردم و با عجله به طرف ساختمان پلیس نزدیک خاانمان رفتم از معمور مرکز رسیدگی به امور گمشدگان درخواست ملاقات کردم البته برای کارمند قسمت پذیرش جزیات موضوع را توضیح ندادم من سباستین واگنر هستم در خدمتم خانم خودش را اینطور معرفی کرد و من رو به یک اتاق, اتاق که در آن بسته بود هدایت کرد تا خبری که میخواستم به او بدهم را بشنود نمیدونم شما میتونید به من کمک کنید یا نه. ولی خواهرم که در واقع اهل آلمان غربی هست، از محل سکونتش در برلین شرقی ناپدید شده. آقای واگنر اخمی کرد و سکوت نمود. ابروهایش در هم رفت و معلوم بود سایدرد در ذهنش پاسخی برای این حرف پیدا کند. چون این مسائلی به اداره پلیس ما مربوط نمیشه. اما من براتون این کار میکنم و درخواست شما رو به دفتر ارتباطات آلمان شرقی در مرکز امور خارجه ارجا میدم تا به اونها اطلاع بدن این نهایت کاریه که من میتونم انجام بدم شروع به پرسیدن سوالات از من و نوشتن آن اطلاعات کرد اسم خوهره چیه؟ هیلدا بیکر بعد یادم اومد که این اسم اصلیش نیست حرفم را تحصیح کردم هیلدا اشمیت سوالاتش که تمام شد گفت بررسی موضوع در اداره مربوطه از روز دوشنبه شروع خواهد شد و من باید از طریق مسئولان آن اداره جریان را پیگیری کنم به فاصله یک یا دو خیابان دورتر از اداره پلیسی که لیلیان مراجعه کرده بود شیمون وایتسمان پشت میز کوچکی در کنج اتاقش نشسته بود و یک پرونده را که پر از برگه های زد رنگ بود بررسی می‌کرد. رنگ برگه ها از گذشت زمان حکایت داشت و مطالب زیادی را در طی سالها در خود پنهان کرده بود <تصفيق> بعد از محاکمه و اعدام آیشمن، فشارها شدیدتر شده بود و به او ماموریت داده بودند با استفاده از تحرکاتی که در نتیجه محاکمه ایجاد شده و فرصتی که به دست آمده بود، دوباره قضیه هولوکاست را بولد کند و توجه افکار عمومی را به سوی قضیه هولوکاست سوق دهد. هدف اصلی شکار تعداد هرچه بیشتری از بزرگان نازی و معاونان آنان و سپردنشان به دست ادالت بود. بایتسمان و چند نفر دیگر که البته تعدادشان به انگشتان یک دست نمی به شکارچی نازی ها معروف شده بودند. مشغول مطالعه بود که چند ضربه به در خورد و صدای آن تمرکزش را به هم زد، بلند شد و در را باز کرد. دوستش واگنر بود. از اینکه دیر دیروقت و در چنین ساعتی به دیدنش آمده بود متعجب شد. می‌دونم دیر وقته اما مزاحم شدم چون خبر جالبی برات دارم و فکر می کنم مشتاق باشی بشنوی. به داخل دعوتش کرد و دو بطری آب جو آورد. روبروی هم پشت میز کوچک مملو از پرونده ها و برگه ها نشستند. سپس پرسید خب این خبر چیه که به خاطرش به دیدن من اومدی و خوشحالم کردی؟ فکر کنم یکی از تومه های تو رو پیدا کردم با, با شنیدن این حرف بلا فاصله روی صندلی‌اش جابجا شد و صاف نشست. یادم یک بار اسم اشمیت رو گفته بودی. فکر کنم هیلدا اشمیت بود تا جایی که یادمه. میتونم بهت بگم که اون در برلین شرقی هست یا حداقل مطمئن هستم که قبلا اونجا بوده. پرونده های روی میز را رو زیر رو کرد و به هم ریخت. از داخل یکی از آنها یک لیست چند صفحه‌ای بیرون کشید. و شروع به جسجون میان سرچ آن کرد. سپس سرش را بلند کرد و رو به واگنر گفت اونی که من دنبالش هستم اسمش هیلدا نیست. من دنبال لیلیان هستم. لیلیان اشمیت.